سلام به همه دوستان عزیز و همراهان گرامی با داستان دیگه از سری داستانهای فولکلور ارامنه در خدمتتون هستیم این داستان ماهی سخنگو مرد فقیری در دهی دوردست است زندگی می کرد که کارش حمل ماهیها برای یه ماهی گیر بود و در عوض این شاگردی و این کاری که می کرد روزی چند تا ماهی به عنوان دستمزد میگرفت و به خونه میبرد و با همسرشوننا رو کباب میکرد و میخورد یه روز مرد ماهیگیر ماهی خیلی قشنگی رو گرفته و به دست شاگردش داد و خودش دوباره وارد آب شد تا با تور به گرفتن ماهی ادامه بده در طول این مدت شاگرد کنار آب نشسته بود و در حالی که به ماهی زیبا نگاه می کرد با خودش می گفت این ماهی هم مثل همه ما موجود زنده و نفس می کشه و جون داره از کجا معلوم که والدین و دوستانی هم نداشته باشه از کجا معلوم که معنی شادی و غم رو ندونه در حینی که مرد به این فکر ها فرو رفته بود ماهی شروع کرد به صحبت کردن و گفت دوست مهربون بزار تو من پاسخه تو بدم بله منم پدر و مادر دارم منم با دوستام تو آب بازی می کردم که بر اثر بی احتیاطی به طور ماهی گیر افتادم الانم والدینم حتما دارن گریه می و دوستامم دوچار غم و اندوه شدن خود منم وضع ناهنجاری دارم، گلوم خوش شده و قادر به نفس کشیدن نیستم. خیلی دلم میخواست که میتونستم الان به آب خونک برگردم، دوباره توی آب آروم رودخونه جست و خیز کنم. چقدر دلم میخواست که یه بار دیگه با دوستان بازی میکردم، خواهش میکنم به حالم رحم کن و منو آزاد کن. شاگرد ماهیگیر با شنیدن این حرف ماهی رو برداشت و انداخت توی آب. و گفت برو ماهی قشنگ برو زندگی کن از زندگی لذت ببر که اینجوری دیگه والده نتم گریه نکنن امیدوارم که دوستای تو هم دیگه غمگین نباشن برو با بقیه بازی کن مرد ماهیگیر وقتی فهمید که شاگردش ماهی زیبا و قشنگی که اون گرفته بود و به آب انداخته عصبانی شد و گفت ابله من خودم به آب میزنم و خیس میشم تا ماهی بگیرم ولی تو ماهی رو دوباره به آب میندازی، برو گم شو دیگه به من نزدیک نشو برو که باید گرست نگی بمیری ماهیگیر گیر سبد ماهی ها رو از دست شاگردش گرفت و اونو دست خالی روانه خونه کرد مرد بیچاره ما و حیرون به سمت خونه روان شد و زیر لب میگفت حالا باید چیکار کنم؟ کنم؟ چجوری باید زندگی ما بگذرونم؟ تو همین حال و هوا بود که یهو یه یک دیوی به شکل آدمی زاد که یک گاری رو با خودش میکشید کلش پیدا شد و سلام کرد و گفت سلام دوست عزیز چرا اینجوری به فکر فرو رفتی؟ خدای نکرده نکنه کسالتی داری؟ مرد بیچره تمام داستان اون روز رو حکایت کرد و آخرش هم گفت همسرش نگران اون نمیدونه که چطور باید خرج زندگیشونو در بیاره دیو گفت من یه پیشنهادی برات دارم دوست عزیز این گاوه به مدت سه سال میدم به تو اون هر روز به مقدار کافی به تو شیر میده و تو همسرت میتونین به این ترتیب به زندگی خودتون ادامه بدین بعد از تموم شدن این سه سال درست شب آخر من بر میگردم و سالی ازت میکنم و در صورتی که جواب سآلمو درست دادی؟ گاو مال تو میشه وگرنه هم تو و هم زنت به من تعلق میگیرین قبول میکنی؟ مردک بیچاره که فهمید این بیگانهی ای که باهاش داره صحبت میکنه حتما یه دیوه اما از روی ناچاری با خودش گفت اگه من پیشنهادتون رو نپذیرم از گرسنگی میمیرم و از طرفی هم اگر گاو رو ببرم لاغل مدت سه سال زنده میمونم بعد از اونم خدا بزرگه شاید شانس به ام رو کرد شاید تونستم جواب سآلتو بدم بعد این فکرها شاگرد گیر اضافه کرد بسیار خوب آقای ناشناس شرایط تو قبول میکنم گاو و برداشت تو با خوشحالی به سوی خونه حرکت کرد اون مرد و همسرش سه سال تموم شیر رو دوشیدند و از نظر خوراک و تعمین غذا خیالشون راحت شد از شیرگاف پنیر ماست کره خامه و کشک درست میکردند و به این ترتیب زندگیشون به خوبی میگذشت تا اونکه یه روزی به خودش اومد و فهمید که روز موعود نزدیک شده و امشب دیو سر کلش پیدا میشه قوروب اون شب شاگرد ماهیگیر و همسرش روی سکوی مقابل در خونه نشسته بودن و داشتن به بدبختیشون فکر میکردند و متحیر بودن که این دیو بالاخره چه سالی میخواد از اونا بکنه همسر شاگرد ماهیگیر گفت این نتیجه معامله کردن با دیوا و مغروز شدن به خاطر قبول یک هدیه است اما دیگه کار از کار گذشته بود و چاری نداشتن جز اینکه تا نیمهشب انتظار بکشند. هوا هر لحظه تاریکتر می شد و ناگهان یک جوون خوشمشرب و خوشقیافه به کلبه نزدیک شد و با دیدن اونا گفت سلام دوستان من یه مسافرم و تو تاریکی شب قادر به ادامه سفر نیستم از فرد خستگیم دارم حلاک میشم جایی برای استراحت ندارم آیا اجازه میدین که امشبو تو کلبه شما بخوابم؟ اون دو نفر بدون معطلی جواب دادن بله البته از قدیم گفتن مهمون حبیب خداست ولی اگه شب و تو کلبه ما بمونیم خیلی خطرناکه چرا که ما گاوی رو از یه دیو گرفتیم که با شیر اون زندگی کنیم مشروط به اینکه جواب معمای اون دیو رو بدیم اگه پاسخمون درست باشه گاو مال ما میشه ولی اگه جواب غلط بدیم تا آخر عمر برده و اسیر اون دیو خواهیم بود امشب و اون سه سال به آخر رسیده و الان منتظر دیویم که بیاد و نمیدونیم چه سالی رو باید پاسخ بدیم هر بلاییم که سرمون میاد تقصیر خودمونه از همون روز اول نباید این شرط رو قبول میکردیم مرد ناشناس گفت اشکالی نداره به هر حال من میل دارم امشب و پیش شما بمونم و ببینم چی میشه و به این ترتیب شب رو مهمون زن و شوهر شد شو. نیمه های شب ناگهان صدای ضربه محکمی که به خورد اونها را از جا پروند دیو طبق قول و قراری که گذاشته بود اومد و فریاد زد من اومدم و باید جواب سوالمو و بدین ولی چه پاسخی میتونستن بدن؟ هنوز سآلی هم نکرده بود زن و شوهر از شدت وحشت به خودشون میل و زبان تو دهندشون خشک شده بود. اما مهمون جوان از جا بلند شد و گفت وحشت نکنین هر سالی باشه من جوابشو میدم دیو دوباره فریاد زد من اومدم. مهمون جواب داد منم اومدم. و به این ترتیب سآل و جواب شروع شد. دیو گفت از کجا اومدی گفت از اون طرف رودخونه گفت چطوری اومدی مهمون جواب داد اسب به لنگ رو زین کردم و به اینجا اومدم دیو گفت پس حتما رودخونه کوچیکی بوده مهمون جواب داد برعکس حتی اوقاب هم قدرت اینو رو نداشت که از یه سمتش به سمت دیگه پرواز کنه دیو گفت در این صورت اوقاب باید اوقاب خیلی کوچیکی باشه جوونک گفت برعکس سایه بالهای اون یه شهر رو تیره میکرد دیو گفت خب حتما شهر شهر کوچیکی بوده که با سایه های یه اقاب کوچولو تیره میشه جوونک جواب داد برعکس حتی سنجاب هم قدرت اون رو نداره که از یک طرف شهر به اون طرف دیگه بره پس حتما سنجاب خیلی جوون بوده جواب داد برعکس کاملا برعکس از پوست اون سنجاب میتونیم یه پالتو و کفش و کلاه مردونه درست کنیم دیو جواب داد پس یه همچین مردی باید کتوله باشه مرد جوان جواب داد کاملا برعکس اگه خروسی روی زانوی اون مرد بشینه صدای بانگ خروس به گوشای اون مردم نمیرسه دیوه گفت پس حتما باید کر باشه دوباره مرد جوان جواب داد اه اشتباه میکنی قدرت شنواییش اینقدر زیاده که صدای تکون خوردن علف رو, رو روی قله کوه هم میشنوه دیو حیرت زده فهمید که با یکی قویتر و داناتر از خودش طرفه و بدون اینکه دیگه حرفی بزن و جر رو بحثی بکنه راه خودشو رو گرفت و تو تاریکی شب ناپدید شد زن و شوهر که دوباره آزاد شده بودن نفس راحتی کشیدن چیزی نگذش که هوا روشن شد و مرد بون با اونا خداحافظی کرد اما اون زن و شوهر جلوی راهش رو گرفتن و گفتند مرد جوان ما نمیذاریم تو از اینجا بری. زیرا تو جون ما رو نجات دادی باید بگی که چگونه میتونیم جبران کنیم مسافر جوان جواب داد من نمیتونم بمونم دوستای عزیزم هر دو گفتن پس اگه قادر به جبران محبت تو نباشیم حداقل اسم اسم خودتو به ما بگو تا بدونیم ناجی ما کی بوده مرد جوان گفت اگه کار نیکی بکنین حتی اگه تو آبم بندازیدش مردم از اون با خبر میشن خداوند همه چیز رو دیده و جبران میکنه من همون ماهی سخنگوییم هم که شما سه سال قبل جون منو نجات دادین مرد ناشناس پس از گفتن این حرف انگار که اصلا از اول اونجا نبوده در برابر چشمای بوت زده زن و مرد ناپدید شو این قصه هم به پایان رسید تا رسی دیگر و درودی دیگر بدرود